أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن خداوند دی اندازه مسبن نهو یس بار رحمت یسبح لله ما بالسماوات و ما في الارض الملك القدوس العزيز الحکیم آنچه در آسمان ها و است هم با را تسبیح خدا میکنند. خداوندی که مولک حاکم است و در مبرر و عزیز و حکیم است هو الگی بعت فی الامین و و و و این کل من قبل که در میان جمعیت درد نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند، و آنها را پاکیزه کند و کتاب و حکمت بیاموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. برسول برقوشه دجاري كهند. بأنها من حيث نشود عنه. بأو عزيز وحكيم. ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء. والله هو الفضل العظيم. این فضل خداست که به هر کس بخواهد میبخشد به خدا خداوند صاحب فضل عظیم است مثل الذین حملو التورا لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدر قوم الظالمين کسانی که مکلف و تورات شدند ولی حق آن را ادا ننمودند مانند درازگوشی هستند که کتابهایی را حمل می قومی که آجات الهی را تکجیل کردند مثال بدی دارند و خداوند جمعیت ظالمان را هدایت نمی کند أنكم لله من دون الناس اندعمتم من دون الناس فتمنون بگو ایه اگر گمان میکنید که شما دوستان خدا غیر از مردم هستید آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید و تمنونه ابدا بما قدمتدهمولی آنها هرگز تمنای مرگ نمیکنند خاطر اعمالی که از پیش فرستادهاند و خداوند ظالمان را به خوبی میشناسد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیكم ثم تردون إلی عالم الغیب والشهادة فینبئكم بما كنتم تعملون بگو این مرگی که از آن فرار می کنید فر با شما ملاقات کرد سپس بسوي کسی که از پنهان و آشكار با خبر است بردمی شویم و شما را از آنچه انجام می دادید خبر می یا آیا الذين آمنوا إذا رودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذلباي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز روز جمعه آزان گفت می شود سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید فا اذا قضیت اسغلات فا انتشرو في الارض من فضل و و هنگامی که نماز پایان گرفت شما آزادید در زمین پراکنده شبید و از فض الهی طلب کنید و خدا را بسیار یاد نمایید گید تا رستگاه شبید و اذا رأو تجارتا اوله و نمفضو الیها و ترکو کخائما عند الله قیرم من اللهوی و من التجاره و الله خیر وادفین. هنگامی که تجارت یا سرگرمی و لحی را ببینند فراگنده می شوند و به سوی آن میروند و سرا ایستاده به حال خود رها می کنند بگو آنچه نزد خداست بهتر از لح و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است